هم دوستان همراه کانال هزار افسان امیدوارم حالتون خوب باشه. از کتابی که مشخصاتش ذکر شد داستانی رو بهتون تقدیم میکنم به نام ویرژیلیوس جادوگر سالهای سال پیش از این دلاوری رومی با همسرش ماجا زندگی می کن. اونا صاحب پسری شدن و نامش رو ویرژیلیوس یا ویرژیل گذاشتن. زمانی که هنوز کوچک بود پدرش درگذشت. خشاوندان به جای اینکه از بچه و مادرش حمایت کنند، هم زمینای کشاورزی و هم پولشون رو بالا کشیدن. زن بیوه از ترس اینکه جون بچه رو هم بگیرن، اونو به اسپانیا فرستاد تا وقتی بزرگ شد به دانشگاه بزرگ تولدو بره و تحصیل کنه. ویرژیل به کتاب علاقه داشت و تمام روز درباره مطالب کتابایی که میخوند تفکر میکرد. اما یک بعد از ظهر که بچه ها به تعطیلات رفتن اونم از خونه بیرون زد و پس از پیمودن راهی دراز به جای رسید که قبلا هرگز به اونجا نرفته بود. در برابر خود قاری دید. بی اون که کسی اون ببینه پا به داخل قار گذاشت. قاری جرف بود و به نظرش اینطور می اومد که قار تو دل یک کوه پیش میره. با خودش فکر میکرد که ای کاش طرف دیگه ی قار رو اگه وجود داشته باشه بتونه ببینه. مدتی تو دل تاریکی پیش رفت و لحظه درنگ نکرد. گاهگاهی کرسوی را از جای می دید. کمی بعد صدایی شنید. ویرژیل ویرژیل در حالی که به دوروبر خودش نگاه میکرد پرسید کی صدا میکنه؟ صدا جواب داد ویرژیل آیا روی زمین جایی که استاده ای و زنجیر نشدی؟ جوان جواب داد آره حالا میبینم. صدا گفت پس قلوزنجیر رو و منو آزاد کن. ویرژیل که کاریو از روی عجل انجام نمیداد پرسید، اما تو کی هستی؟ صدا گفت من روح پریدم. تو این قار تا روز قیامت تو بند خواهم بود. مگه اینکه مردی بیاد و آزادم کنه. اگه نجاتم بدی، چند کتاب جادو به تو میدم تا سرامده همه بشی. خب، ویرژیل داناییو دوست می داشت و از این سخنان وسوسه شد. اما بار دیگه دورندیشیش به کمکش اومد. پس گفت بهتر اول کتابا رو بده و روش استفاده از اونا رو به اون بیاموزه. روح پلید که دید چاره ای نداره همین کار کرد. بعد ویرژیل زنجی رو باز کرد. اونجا سوراخی وجود داشت. روح پلید یواش یواش خودش باز کرد و از اون سوراخ بیرون کشید. همین که روی زمین استاد از نظر قامت سه برابر ویرژیل و مثل زغال سیاه بود. ویرژیل با صدای بلندی گفت عجب با این قد و قامت چطوری تو اون سوراخ جا شدی؟ روح پلید جواب داد یه جوری جا شدم دیگه. ویرژیل گفت اصلا باورم نمیشه. روح پلید گفت بسیار خوب. دوباره توی سوراخ میرم و نشونت میدم جا میشم و با پیچ که به خودش داد خیلی قشنگ تو سوراخ جا شد همون موقع ویرژیل آهنی آهنیا از زنجیر گذروند و اونو محکم بست کتابا رو زیر بغل زد و از قار خارج شد تا چند هفته ویرژیل نه به غذاش میرسید و نه به اون چنان غرق در مطالعه کتاب و یادگیری فنون جادوگری شده بود که به چیزای دیگه توجهی نداشت. اما پس از پایان چند هفته قاصدی از طرف مادرش اومد و پیغام ورد که هرچه زودتر به باز بازگرده. مادرش بیمار شده بود و دیگه نمیتونست به کاراش برسه. باید کسی از اون مراقبت کنه. ویرژیل که از ترک تولد ناراحت بود چون که اونجا دانش زیادی فرا گرفته بود، که از بیماری مادرش باخبر شد، مشتاقانه آماده سفر شد. پس چهار کیسه پر از اشیای قیمتی رو به قصد داد تا بار اسبا کنه. بعد یه اسب سواری سفید به آن داد تا سوارش بشه و هر روز برونه. پس دنبال کارای خودش رفت و اندکی بعد در حالی که تعداد زیادی شاگرد دنبالش راه افتاده بود، به سوی روم حرکت کرد. دوازده سال میشد که از روم بیرون آمده بود. مادرش در حالی که سیل اشک از چشماش جاری بود به اون خوش گفت. خیشاوندهای فقیر دورش گرفته بودن. اما اونا که ثروتمند بودن از اون فاصله گرفتن. چون که می که این بار نتونن مثل سالهای قبل مالا اموال مادر و پسر رو بالا بکشن. البته ویرژیل هیچ توجهی به اونا نکرد. چون که میدید که اونا با حرس و حسادت تموم به هدیه های گران قیمتی که اون به بستگان فقیر خودش میداد چشم دوخته بودن. ویرژیل به کسانی هم که تو نبود اون هوای مادرشو داشته بودن، هدیه هایی داد و همین باعث حسادت بیشتر خیشان پولدارش شد. به زودی پس از این ماجرا زمان مالیاتگیری از راه رسید و هر کسی که مالک زمین بود، باید برای گزارش داراییش نزد امپراتور میرفت. رفت. ویرژیل مثل بقیه به دربار رفت و از امپراتور تقضا کرد، به دادش برسه و زمینایی که از شنگش در ورده بودن باز پس گیره. اما ثروتمندا از خیشاوندان امپراتور هم بودن، پس هیچ چیز گیرش نیومد. البته امپراتور به اون گفت که به این موضوع ظرف چهار سال آینده رسیدگی خواهد کرد و حکم خواهد داد. خب این پاسخ ویرژیلو رو قانه نکرد پس پاشنه کفشش رو ور و به خونهش برگشت اون محصول خودش رو درو کرد و اونا رو تو جاهای مختلف انبار کرد بدخواه های ویرژیل که تمام کاراش زیر نظر گرفته بودن گرده هم اومدن و دژ اونو محاصره کردن ویرژیل حریف اونا بود از دژ بیرون اومد تا با محاصره کننده ها رو در روشه. بعد افسونی بر اونا خوند که سر جاشون بی حرکت باقی بمونند اون همگی رو به مبارزه طلبید بعد افسون برداشت و اونا که مثل سپاه شبیخونگر به اونجا هجوم رو بودن دمشون رو رو کلشون گذاشتن و به روم عقب نشینی کردن و همه چیز به امپراتور گزارش کردن. امپراتور از اون آدمایی بود که هرچه می گفت باید انجام می شود. حتی قبل از اون که دستورش رو کاملاً صادر کنه، همه باید اطاعت کنند. پس سپاهی دیگه رو همراه سپاه اول به سوی دژ ویرژیل فرستاد. همین که سپاهی تو جای خود مستقر شدن، ویرژیل افسونی بر اونو انداخت و رودی بزرگ به دورشون کشید. طوری که نمیتونستن دستشون دستشونات تکن بدن و نپاشون بعد، قاسدی با درودهای گرم خودش نزد امپراتور فرستاد و به اون پیشنهاد صلح داد و دست دوستی به سوش دراز کرد. امپراتور به قدری خشبگیم بود که حاضر نبود به چیزی گوش کنه. ویرژیل که صبر و شک بایش با حد و اندازه داشت بی خیال همه چی شد. اون همراه یارانش جشنی بپا کرد و در برابر چشمای میزبان و سپاه گرستنش بخور و به راه انداختد. خب، اوزا و احوال نمیتونست به این صورت ادامه یابه. روز سرکله جادوگری تو اردوی امپراتور پیدا شد و گفت که حاضره به امپراتور خدمت کنه. پیشنهاد اونو شادمانه پذیرفتند در یک لحظه تمام اردوی جنگ به حرکت در اومدن. رود از میان رفت و سربازا حمله کردند. بر اثر حیاهوی زیاد ویرژیل نتونست بخوابه اون نمی دونست با جادوگر چگونه دست و پنجه نرم می کنه. پس تمام زورش رو جمع کرد و کتاب سیاه جادو رو باز کرد. با مطالعه بخشهایی از کتاب یاد گرفت که از چه افسونی استفاده کنه. در یه لحظه تموم دشمناش به سنگ تبدیل شدن و سر جای خود باقی موندن. بعضی از اونا وسط بیابون بودن و بعضی های پاشون روی دیوار بود. خلاصه هر جا که بودن، به همون حال اول خود باقی موندن، حتی امپراتورو جادو کرد. تمام روز اونا به همون حال مثل مگسای روی دیوار سر مونده بودن. اما در طول شب ویرژیل به آرومی پیش امپراتور رفت و گفت اگه به ادالت رفتار کنه و حقشو بده اونو آزاد میسازه. امپراتور که حالا پی به قدرت ویرژیل برده و تموم وجودشو ترس گرفته بود، و تموم خواسته های اون موافقت کرد. پس ویرژیل افسونو برداشت و ترتیب سروسات مفصلی رو برای امپراتور داد. سپس به هر یک از سربازای دشمن هدیه هایی داد. اونها هم به دستور امپراتور به روم بازگشتن. ویرژیل به کار بزرگ دیگه ای هم اقدام کرد. اون برج مربع برای امپراتور ساخت که هر گوشهش، هر سخنی که در چهار گوشه روم به زبون می شنیده چنیده می شد. مثلا اگه وسط برج می هر زمزمه ای که تو روم میشد از گوشه های برج به گوش می رسید. ویرژیل پس از انجام این کارا و سر و دادن به امور امپراتور وقت کافی داشت که روی چیزایی دیگه فکر کنه. اولین کارش این بود که عاشق شد. نام دوشیزه زیبا فبیلا از خانواده اشراف بود. چهرش زیباتر از هر کس دیگه ای تو روم بود. فبیلا یه عیب داشت و اون این بود که سر به سر ویرژیل میزاشت و اونو هیچ وقت جدی نمی سرانجام روزی براش پیغام فرستاد که تو اقامتگاهش به دیدن اون بره و گفت ریسمانی به زنبیدی میپنده و اونو از طبقه بالایی ساختمون پایین میندازه و ویرژیلو بالا میکشه. مرد جوون از این لطف کاملا غیرمنتظره دچار شیفتگی شد و با شادی بسیار داخل زنبیل نشست اون زنبیلو به آرومی بالا کشید و گاهگاهی نیز مکس میکرد بعد وبیلا از همون بالا فریاد کنان گفت جا دوگره ولگرد حالا همونجا آویزون بمون از وقت بعد اقامتگاه دوشیزه نزدیک بازار بود خیلی زود مردمی که برای خرید به بازار اومده بودن خنده سرددن. لحظه به لحظه بر تعداد مردم افزوده می و همه به اون می خندیدن. طوری که ویرژیل از شدت خشم داشت دیوونه می شد. بلاخره امپراتور که از این همه به هم ریختگی با خبر شده بود از فبیلا خواست تا زنبیلو به زمین برسونه. ویرژیل در حالی که به خونه باز میگشت قسم خورد که از اون انتقام بگیره صبح بعد تموم آتیشا تو روم خاموش شدن و چون اون زمان کبریت نبود این وزن مشکلافرین شد امپراتور که فکر می کرد این کار ویرژیل بود از اون خواست تا تلسمو بشکنه به دستور ویرژیل یک تختگاه وسط بازار برپا شد و فبیلا رو در حالی که فقط جامعه سفید بلندی به تن داشت اونجا آورد. سپس به کسایی که اونجا آمده بودند گفت که مشعلاشون آماده سازن تا آتیش به دست بیارن و اونو به دست همسایه های خودشون مرسونن. دوشیزه خودخواه و در حالی که فقط جامعه سفید به تند داشت بالای تختگاه بردن و پاشو به دیرک چوبی بستند. شعله های آتیش به دور اون زبونه می مشعل بعضی ها کاه تو دست داشتن و تعدادی هم خورده چوب بردن. به این ترتیب آتیش تو خونه رومیا برافروخته شد. سه روز دوشیزه اونجا وسط شعله های آتیش بود تا اینکه تمام تموم شهر روم آتیش دار شد. بعد از این همه رنج فبیلا رو آزاد کردند تا به هر جا که میخواد بره. اما امپراتور که از این نحوهی انتقامگیری ویرژیل سخت خشمگین شده بود، اونو به زندان انداخت و قسم خورد که هرچه زودتر به هلاکتش برسونه. ویرژیلو به تپه یه بردن تا اونجا به زندگیش پایان داده بشه. ویرژیل آهسته و آروم همراه نگهبانا حرکت میکرد. روز گرمی بود. با رسیدن به محل اعدام، تقاضای ظرفی آب کرد. براش سطلی آب آوردن اون سطلو به دست گرفت و فریاد زد. امپراتور درود بر تو باد. اگه منو میخوای توی سیسیل دنبالم بگرد. و با سر توی سطل رفت و ناپدید شد. ما تا مدت ها خبری از ویرژیل نداشتیم و اینکه آیا با امپراتور پیمان صلح بست یا نه خبریم. امپراتور به فکر دفاع و محافظت از شهر روم بود. این گونه بود که پای ویرژیل به کاخ اون باز شد. اون برای محافظت شهر روم از دست دشمنای داخلی یا دشمنایی که هرگز وجود نداشتند، نزد امپراتور رفت و چندین روز به تفکر و تعمل پرداخت. سرانجام نقشه ریخت که به نقشه حفظ شهر روم معروف شد. در پشت بوم امارت کاپیتول که مشهورترین ساختمون شهر بود مجسمه های کرد. اونا نشونه های خدایگانی بودند که از سوی ملت تابع روم پرستش می شدن. وسط این مجسمه ها مجسمه ایزد روم قرار داشت. هر یک از ایزدان فاتح تو دست خود زنگی داشت و اگه تو هر یک از کشورها حتی فکر خیانت و آشوب به سر کسی میزد زد ایزد اونجا به ایزد روم پشت می‌کرد و با خشم تموم زنگ و به صدا در می آبود. همون موقع سناتورا شتابون بیرون میومدند تا ببینند چه کسی یا کدوم کشوری در برابر احلا حضرت امپراتور روم سر به شورش برداشته. بعد سپاه آماده می و به سوی دشمن میتاختند. اون زمان کشوری بود که از زمانای قدیم حس حسادت تلخی نسبت به روم داشت و از نظرای نگران ویرانی خود از سوی رومی پس مردم اون سرزمین سه مرد رو انتخاب کردند، پول زیادی در اختیارشون گذاشتن، اونا رو به رون فرستادن و به اونا گفتن که وانمود کنن خواب گذارن. همین که اونا به نزدیکی شهر رسیدن، شب دزدکی وارد شهر شدن و خوزه ای رو تو امق زمین خاک کردن و خوزه ای دیگه رو تو بستر رود تیبر درست جایی که پلی روش کشیده بودن دفن کردن. روز که شد به مجلس سناتورا جایی که قوانین و وزمی کردن رفتن و با تعظیمی جانانه گفتن سروران پاک نهاد. دیشب خواب دیدیم که زیر فلان تپه گوزهی طلا مدفونه. آیا اجازه میدید اونجا رو حفر کنی؟ به اونا اجازه داده شد. اونا چند مرد کاری با خود بردن و گوزهی طلا رو بیرون آوردن. چند روز بعد دوباره به سنا رفتن و گفتن ای نجیب زادگان، لطف کرده به ما اجازه بدید تا دنبال گنج دیگه ای باشیم. تو خواب دیدیم که این گنج زیر پل روی رودخونه مدفونه. این هم سناتور اجازه دادن. اونا چند قایق کرایه کردن و کارگرایی یا همراه خود بردن. از روی پل تنا باویختن و به جای مورد نظر رسیدن و کوزه طلا رو در آوردن و اونو به سناتورا هدیه دادن. یک هفته یا دو هفته گذشت. یه بار دیگه اونا به مجلس سنا رفتن و گفتن: "دیشب تو رویایی دلچسب به چشم خود دیدیم که دوازده خمره طلا زیر سنگ بنای کاپیتول همون جایی که روش مجسمه حفظ روم قرار داره مدفونه." تا الان دو بار به ما اجازه حفر زمین دادید. که از این لطف و مرحمت شما ما پولدار شدیم. حالا هم از شما تغازامندیم به خاطر پولی که آید خودتون میشه، اجازه حفر اونجا رو هم بدیم. اگه کارگرانی در اختیارمون بذارید، بیدرنگ مشغول کار میشیم. با دریافت اجازه از سوی سناتورا، اونا به همراه کارگران مشغول کندن شدند. وقتی به اندازه کافی زیر امارت کپیتولو کندن، گونه که پنهانی اومده بودند در رفتند. روز بعد مجسمه حفظ روم با صورت به زمین افتاد و چند تکه شد. با این اتفاق سناتران متوجه شدند که هر و آزشون باعث نابودیشون خواهد شد. از اون روز به بعد هر چیز بد بدتر شد. هر روز صبح مردم به حضور امپراتور می و از دزدی و غارت و قتل و جنایت های دیگه که شبا تو کوچه و خیابونا روی میداد چکایت میکردن. امپراتور که آرزوی به آرامش و امنیت رعایش نداشت با ویرژیل مشورت کرد و چاره فرونشونی اون همه کشونت و اقتشاش رو پرسید. ویرژیل مدتی طولانی به فکر فرو رفت و بعد گفت فرمان روای بزرگ. دستور بدید اسب و سواری مسی بسازند و اونو جلوی امارت کاپیتول بذارن. بعد اطلاعیه ای صادر کنید که سر ساعت ده وقتی زنگ به صدا در میاد هر کس باید به خونش بره و بیرون نیاد. امپراتور هر کاری که ویرژیل گفت انجام داد اما دزدا و قاتلا به اسب میخندیدن و طبق معمول دنبال کارای پلیدشون میرفتن. اما با آخرین ضربه زنگ اسب مسی با سوار مسیش. تو خیابونای روم چارنل میتازید. روز که میشد، بیش از دیویست جنازه رو که در حال فساد بودن، تو خیابونای کوچه ها شمارش میکردن. بقیه ی چونکه چون که هنوز تعدادی از اونا باقی مونده بودن، به جای اینکه که بترسن، اونگونه که ویرژیل امیدوار بود، نردبونای تنابی که به اونا گلاب بسته بودن آماده کردن، و همین که صدای اسب رو میشنیدند، گلا به ریسمان و به دیوارا انداختن و با رسیدن اسب و سوارش از ریسمان بالا می رفتن. با این کار هیچ آسیبی به اونا نمی رسید. بعد امپراتور دستور داد دو سگ مسی مسیم بسازند تا در پی اسب و سوارش دوان گردن و هر وقت دزدا از دیوارا بالا می و به ریش امپراتور و ویرژیل می خندیدند از جا به و اونا رو فرو بکشن و به حلاکت برسونن. این گونه بود که ویرژیل آرامش و نظمه به شهر باز کردند. تقریبا همین زمان شهرت دختر سلطانی که بر سرزمین بابل حکومت می کرد همه جا پیچیده و زبان زده همگان شده بود. می اون زیباترین شاهدخت جهانه. ویرژیل هم مثل بقیه افراد این سخنا را درباره شاه شاهدخت شنیده بود و بر اثر همین شنیده ها شدیدن به دام اشقه اون گرفتار اومد اون پلی تو هوا ساخت که بین روم و بابل کشیده میشد. بعد پا روی پل گذاشت و راه افتاد تا خود رو به شاه دخت برسونه دوشیزه هم با دیدن اون تا حدی شگفت زده شد به اون خوش آمد گفت و پس از گفتگوی کوتاه، اون نیز اشتیاق خودشو برای دیدار از کشور دور دستی که ویرژیل اونجا زندگی می کرد نتونست پنهان کنه ویرژیل گفت که اونو بی اون که کپ پاش شه، از دریا میگذرونه و به روم میبره. شاه دوخت چند روز تو کاخ ویرژیل اقامت کرد. اون از دیدن اون همه شگفتی که حتی تو خوابم ندیده بود شگفت زده شده بود. شگفتیش به حدی بود که از پذیرفتن و حدایه بیحد و اندازه ی ویرژیل خودداری میکرد. زمان به سرعت برق میجهید. گویی یه ساعت یه دقیقه بود که میگذشت. سرانجام شاه دخت بابلی گفت که بیش از این نمیتونه از پدرش دور باشه. ویرژیل اونو از پل هوایی گذرند و به آرومی روی بسترش نشوند. صبح روز بعد سلطان به دیدن دخترش رفت. دوشیزه هرچی رو اتفاق افتاده بود برای پدرش تعریف کرد. سلطان طوری بانمود کرد که خیلی دوست داره غریبه رومی رو ببینه. به همین جهت از دخترش خیلی جدی خواست که دفعه بعد اونو با مرد رومی آشنا سازه. خیلی زود شاهدخت پدرش با باخبر کرد که قریبه رومی بدیدنش اومده. به دستور سلطان همه آماده برپایی جشنی بزرگ شدن. سلطان دخترشو نزد خود خوند و جامی نوشیدنی به اون داد و گفت که به افتخار ورود مهمون جامو به اون بده. وقتی که همه تو مهمونی حاضر شدن و سروسات براه افتاد، شاه از جا برخاست و جامع نوشیدنی گوارا رو به ویرژیل داد. اون جامع سر کشید و بلافاصله به خوابی عمیق فرو رفت. سلطان به نگهبانا دستور داد تا او محکم ببندند تا روز بعد همونجا رهاش کنن. پس از این کار روز بعد سلطان، بزرگان و نجیبزادگان دربار و تو تالار بزرگ قصر به حضور پذیرفت و به نگهبانا دستور داد تا بندای دست و پای ویرژیلو باز کنن و اونو نزدش بیارند همون که چشم سلطان به اون افتاد آتیش خشمش زبونه کشید و اونو به بردن شاه دخت به کشوری دور اونم بدون اجازه سلطان متهم کرد ویرژیل پاسخ داد گونه که شاه و به سرزمین خودش برده اونو سالم بازگردونده در حالی که میتونست شانین کاری نکنه. سپس گفت که اگه آزادش کنند به کشور خودش باز میگرده و قول میده که هرگز پا به سرزمین سلطان نذاره. سلطان با فریاد گفت اینطورم که فکر میکنی نیست چون که مرگی ننگاور در انتظارته. دخت زانو بر زمین زد و ملتمسانه فریاد برآورد که جون اونو هم بگیرن. ویرژیل که کاسه صبرش لبریز شده بود به سلطان گفت سرورم سلطان، سخت در اشتباه هستی و حساب همه چیزو نکردی. و افسونی بر سلطانو درباریانش انداخت. در برابر چشمایی از هدقه در اومده سلطان، رود بابل به جوش و خروش در اومد و به تالار سرریز کرد. همه ی کسایی که اونجا بودن چاره ای ندیدن جز اینکه تن به آب بسپارند. اونا مثل گرباقه ها و ماهی ها زیر آب می‌رفتند و بالا می اومدن و می ویرژیل شاهدخت و برداشت و هر دو از روی پل هوایی به سوی شهر روم ره سپار شدن. ویرژیل که فکر می‌کرد هم کاخش و هم شهر روم برای زندگی مرواریدی چون شاهدخت جایگاه شایسته این نیست دست بگار شد و برای اون شهری ساخت که پیهاش روی تخم مرغی که در اعماق دریا کار گذاشته بودم قرار داشت تو شهر برج و باروی چارگوش ساخت و پشت بوم برج میله آهنی کار گذاشت وسط میله بطری قرار داد روی بطری تخم مرغ گذاشت و از تخم مرغ سیبی رو با زنجیر آویخت که تا امروزم هم اونجا آویزونه. هرگاه تخم مرغ تکون میخوره شهرم میلرزه. هرگاه تخم مرغ شکسته بشه شهر هم بیران خواهد شد. ویرژیل سرتاسر شهر رو پر از چیزای شگفتی انگیز کرد. چیزایی که تا قبل از این هرگز کسی ندیده بود. اون این شهر رو ناپل نامی.